بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام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 السلام علينا علی عباد الله الصالحين، السلام علی امیر المؤمنین السلام علی صدیغت الشهيدة، السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی ابن علي الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علی باغر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسی بن جعفر الكازم السلام على علی بن موسی الرزا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علی بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي الأسكري السلام على الحجه ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا مؤذ المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية واشهد انك الامام المهدي قولا وفعلا و انتتم لغل ارز قست و عدلا بعدما ملعت ظلم و جورا فعجل الله فرجك و غرب زمانک و کسر انصارک و اعوانک و انجز لک ما وعدك و هو استغل قائلی برد رسوندم که مرهوم علامه مجلسی در جلد 44 بهار صفحه دویست و, و هشت از امام باغر علیه السلام نقل می که امام باغر فرمودن وقتی امیر علیه السلام از سرزمین کربلا عبور می ایستادند ایستادن نگاهی به اون سرزمین انداخته و فرمودند این زمین زمینی است که مناخ و رکاب و مسار او اشاق شهدا. لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم با الهام از این فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام که ایشون میفرمایند سرزمین کربلا سرزمینی است که بر جستگانی در اینجا فرود خواهند آمد و اینجا که حسانی جان میبازن و به شهادت می رسن که نه قبلی ها از اونها سبقت گرفتن، نه بعدی توانند از اونها سبقت بگیرند. خب این سوال برای ما مطرح می شود که اینها چه کردن؟ دارای چه ویژگی بودن؟ که به بیان امام علیه السلام که گذافهی مبالغهی در سخن معصوم راه ندارد؟ نه قبلی توانستند توانستن سبقت بجوین، نه بعدیها خواهند توانست ارز کردم دو واژه رو مولا در اینجا به کار بردن تحلیل این دو واژه می تواند برای ما راه گشا باشد از دو جهت یک فهم بهتر و درایت دقیقتر خود این حدیث دوم بهرهی که از این حدیث برای پیروبی از مکتب امیرالمؤمنین و امام حسین بناس ما داشته باشیم. دو واجه چیست؟ شهیدان عاشق یا عاشقان شهید. حالا به هر دو تعبیر بگیریم. خب بحث شهید در فرهنگ اسلامی مشخص. اون کسی که بالاترین سرمایه وجودیش جان را خالصانه در راه خدا هدیه کند و در طبق اخلاص بگذارد آیا قبل از ابی عبدالله علیه السلام شهید راه خدا نداشته ایم فراوان آیا بعد از واقعی کربلا شهدایی که جانشون را در راه خدا داده باشند نداریم چرا پس چیست که امیرالمؤمنین میفرمایند نه قبلی ها نه بعدی ها لابد یک رمزی در اون قید بعدیش باید نهفته شده باشه. شهدای های خب منظور از شهدای عاشق چیست؟ عملی که از ما انسانها ها سر و طبق فرمایش ذات اقدس الهی در قرآن لیس للانسان الا ما سعا و درجات من ما عملو و ما ربکب غافلن اما تعملون که بحثش گذشت کسی در این عالم بدون عمل بدون تلاش بدون زحمت به جایی نمیرسد اما این زحمت و این تلاش و فعالیت گاهی نه تنها مفید نیست مقبول حضرت حق نیست مذر است مخرب است گاهی این عمل مخرب نیست ولی پیشبرندگی و کمال زائیش بسیار محدوده کدام عمل است که در فرهنگ دینی با توجه به آیات و روایات و تحلیل عقلی میتواند سرعت بخش باشد و در اوج دادن انسان به کمالات به گونه ای باشد که در رابطه با ابی عبدالله و شهدای کربلا امام علیه السلام بفرمایند کسی نمیتونه از اونها سبغت بگیره برای این منظور ما باید به انگیزه های درونی انسان و عوامل و ریشه های اعمال اول توجه کنیم این عملی که الان از این فرد سرزده بر چه است؟ گاهی عمل نماز است ولی بر مبنای انگیزه درونی ریاه گاهی عمل روزه است ولی بر مبنای انگیزه درونی تظاهر گاهی عمل خدمت به خلق است ولی بر مبنای انگیزه درونی شهرت طلبی گرچه این عمل در خارج از وجود من ممکنه یک آثار مفیدی برای دیگران داشته باشه ولی به اقتضای ریشه عمل در درون من برای خود من مخرب خواهد بود همون گونه که از امیرالمؤمنین علیه السلام راجب نماز و روزه با هم بحث کردیم پس برای اینکه ببینیم انگیزه عمل و اون ریشه عمل در دنیای درونی ما چه میتونه باشه باید یه مقداری عامل اعمال انسان را در انسانشناسی شناسی بررسی کنیم میایم سراغ انسان در انسان قرآنی که در بحث‌های حکمی و عرفانی هم خیلی روش منور دادند و بحث کردند حقیقت انسان، انسانیت انسان، ویژگی انسانی انسان، برتری و رجحان انسان نسبت به سایر موجودات بر مبنای نفس انسانی است. نفس چیست؟ نفخه روح الهی در وجود انسان و اگر در خطبه اول نحج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: فرماین نفخ نفخفی ها من روحهی فمسلت انسانن این تمثل انسانی انسان به تعبیر خودمونی تر بگم انسان شدن انسان انسان بودن انسان بر مبنای نفخه روح الهی در وجود این انسان است حالا که این روح که از عالم امر است و برای این انسان به اذن الله با نفخ الهی تعلق می‌گیرد همون گونه که ذات اقدس الهی معیت غیومیه نسبت به کل ما سوالا دارد هو معکم او با شماست عین ما کنتم اما هر جا شما باشید هو معکم این معیت به معنی مسینه که خودکار تو جیب منه کتاب تو کیف منه این معنا نمیده به معنای معیت غیومیه است یعنی اگر احاطه او عنایت او افاظه او سیتره او با من نباشه من هیچم اگر نازی کند از هم فرو ریزم غالب ها جلوه ای از این معیت غیومیه حضرت احد با و الله بین نفس و بدنه لذا نفسم معیت قیومیه با بدن داره نفس است که این چشم میتونه ببینه نفس معیت با بدن داره که گوش میتونه بشنوه نفس معیت با بدن داره که تعقل صورت میگیره و دل پیدا میشه که شهود پیدا میکنه همه ویژگی‌های انسانی انسان در اثر نفس انسانی است حالا اون جنبه ای از نفس که احساس یا جنبه نگم اون قوه از قبای نفس النفسو فی وحدتها کل القوا اون قوه از قبای نفس که احساس محسوسات می‌کند بهش می‌گیم حس اون بود یا قوه از قوای نفس که ادراک معقولات می کند بهش می اون قوه و بعدی از نفس که شهود حقایق می کند بهش دل. لذا در فرهنگ قرآنی هم حواس را به عنوان ابزار شناخت به ما معرفی کرده و سرزنش کردن کسانی که حواس را به کار نبرند، لهم قلوب لا یفقهون بها ها و لهم آزانان لا یسمون بها هم فرموده یعنی همونطوری که اگر شما قلب دارید ارز کردم قلب عقل فعاد حواس حواس و حس که مربوط به جنبه حسی ما عقل و قدرت تعقل و تفقه و تدبر و تفکر فعاد دل قلب به صورت عام عقل به علاوه دل با قرینه قلب به معنی فقط عقل با قرینه عقل به معنی فقط دل با قرینه منهای قرینه وقتی قلب میگن امه عقل و دل رو با هم میگیره حالا اگر فرموده لهم قلوبان لا یفقهون بها اونی که عقل داره دل داره به کار نمیبره اونی هم که حس داره به کار نمیبره اونم سرزنش شده پس ما این جنبه های ارزنده نفسانی را که خدا به ما داده یک باید به کار ببریم دو چگونه به کار ببریم نتیجه از چه بشه من اگر حس بینایی ما به کار نبرم آساری را که به وسیله حس بینایی قراره برای من شناخته بشه خب شناخته نمیشه لذا ممکنه شما بگید فلانی عجب خوب میبیند یعنی چی؟ یعنی قوهی داره به نام بینایی پس این قوهشم به کار انداخته و خوبم داره می‌بینه. فلانی خیلی خوب می‌شنوه. پس یه قوه‌ای داره به نام شنوایی و این قوهشم به کار برده و داره خوب می‌شنوه. حالا یه وقت میگید فلانی خیلی خوب فکر می‌کنه. اینجا قوه ای داره تعقل داره داره به کار میندازه، تدبر و تفکر می‌کنه. خب همون گونه که حس باید کار خودش بکنه، عقلم باید کار خودشو بکنه، دل چی؟ دلم باید کار خودشو انجام بده کار دل چیه؟ کار دل کار عقل تعقله کار حس احساسه کار دل دو جنبه داره همون جوری که عقلم دو جنبه داره عقل یه جنبه نظری داره یه جنبه عملی که بحث شد انشاءالله امشب عرض خواهم کرد و هر کدوم با زابطه باد وظیفه خودشو انجام بدن و این دو هم با هم دیگه خیلی گره خوردن و ربتم به هم دارن حالا بحث عرض میکنم اما دلم همینطور یک جنبه دل شهود حقایق میکند اگر پیغمبر خدا فرمودن من اخلصه لله اربعین صباحا جرت ینابی الحكمه من قلبه الالسانه اینجا قلب با به معنیه فعاد دله اون کسی که چهل روز خودش خودشو برای خدا خالص کنه امیال و هواها و تعلقاتو از خودش دور برانه چشمه های جوشان حکمت از دلش به زبانش جاری میشه خب چشمه یک منفذ و دریچه ای دارد که متصل به یک است از اون معدن آب به وسیله این روزنه به بیرون سرازیر میشه هرچون معدن و مخزن بیشتر پرحجم تر باشه این روزنه و فشار آب و تداوم جریانش هم بیشتر میشه اینکه فرمود جرت ینابی الحکمه من غلبهی الالسانه ینابی جمع ینبوه چشمه های جوشان خب این دل به کجا وصل شده که حکمتها را از اونجا میگیره و جریان میده؟ روایت بعدی پیغمبر شاید اینو بیشتر برای ما توضیح بده. روایت بعدی چیه؟ لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لن نظرو الى ملکوت السماوات اگر این شیطنت ها دور دل بنی آدم را نگرفته بودن گونه که دیشب ارز کردم عقل گرفتار شهوت نشود تعقل میکنه عقل اسیر هوا نباشد تدبر درست داره دل گرفتار عوامل شیطانی نشود چه میشود؟ لنظرو لاملام تأکیده قطعا معکدن همانا نظاره می کند ملکوت عالم برتر را یه اشاره ای راجع ملکوت فقط قرآنی بکنم وقتی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به خدا عرض میکنه چگونه مرده رو زنده میکنی ذات اقدس الهی برای اینکه مبادا امثال من بعد از چارده قرن به این آیات میرسیم بد بفهمیم گمان کنیم که ابراهیم ایمان نداشته بیان میکند اولم تو مگه ایمان نداری چرا لیکن یتمعنه غلبی یعنی میخوام به اون شهود غلبی برسم لذا خدا به حضرت ابراهیم میفرماد این مرغا رو وردار و بکش و روی چهار کوه بذار و بعد صدا بزن میاد اینو چی معرفی میکنه این خصوصیات عالم ملک نیست این ویژگی بر برطرف عالم ماده است لزامی فرماد و کذالک نوری ابراهیمه ملکوت اون حقایق ماوراء ملک را بهش نشون دادیم و اگر در سوره نجم مقام معراج پیامبر را میفرماید دنا فتدلا تا اونجا ما کذب الفؤاد ما رعا این رؤیت کار فعاده کار دله پس میتونه ببینه حقایق را حقایقی را که با این چشم نمیشه دید این یک ویژگی دله و لذا اگر از عقل به این مرحله نرسیم یک پایه از معرفت رو پیدا کردیم مسئله شهدای کربلا با بیان امیر المؤمنین علیه السلام مسار و اشاغ شهدا. اینجا جایگاه جانبازی شهیدان عاشق است. این قسمت شهود دلی رو اول داشته باشید. یه چیز دیگر هم بهش که کار دله اضافه کنم. بعد ارتباط اینو با عقل ارز کنم. که بعضی خیال نکنن تا میگیم عشق عقل رو بذارید کنار. تا میگیم عقل عشق رو بذارید کنار. نه. ببینید اینا چگونه به همدیگه باید گره بخوره و در شهدای کربلا به گونه ای گره خورده که اون بالاترین حد ممکنه عالم رو اینا بهش بسیدن همون جوری که اگر بی قوه بینایی من کارش دیدنه من او رو به کار نندازم از دیدن محرومم عقل کارش تأقله به کار نندازم نسبت به تعقل محرومم دل را من از اون آلودگی ها ندم، شیطنت ها را از حریم دلم بیرون نرانم شهود قلبی حاصل نمیشه حالا شهود قلبی حاصل نشد ویژگی بعدی دل چیه؟ از ویژگی های دل این است که دل بسته می شود. دل بر پیدا میکند دل داده میشود دل دلبر میخواد که به او وابسته بشه اینم از ویژگی های دله لذا تعبیر قرآنی در رابطه با این مطلب رو ارز بکنم قرآن کریم این حالت دلدادگی و دلبستگی رو تحت عنوان حب مطرح میکنه حب یعنی وابسته شدن دل به یک چیزی مرحوم خاج نسیر الدین توسی یک تحلیل آلمانه محققانی که از ویژگی های مرحوم خاج نسیره نسیر الملت و دین اینجا داره اجازه بدید براتون بخونم در کتاب اوساف الاشراف صفحه 70 اوساف الاشراف یه کتاب مختصریه نسبتا اشراف از نظر خاج نسیر در این کتاب است که در سیر الالله به مقامات والایی رسیده اوصاف الاشراف صفات این برجستگان در صفحه هفتاد این کتاب میفرماید محبت به فطری و کسبی تقسیم می شود دلدادگی حب یکیش فطریه یکیش کسبیه محبت کسبی اغلب در انسان بوده و سبب اون سه چیز است سه چیز باعث میشه که دل سراغ محبت میره محبوب رو میخواد کسب میکنه به طرف خودش میاره اول لذت ام از جسمانی و غیر جسمانی و وحمی یا حقیقی انسان وقتی از یه چیزی لذت میبره خوشش میاد حالا ممکنه این لذت لذت حتی جسمانی باشه الان میگن فلان غذا چون لذت میبره میگه دوستش دارم من جا داره میخوام لذا سعی میکنه که مثلا همچون غذایی رو برای خودش تهیه بکنه یا بعضی مسائلی که به سایر قرایز انسان برمیخوره گاهی لذت وحمی خیالی به خیال اینکه به فلان واقعیت برسه چنان دوست میداره چنان که اینا میشه اون چیزای مجازی که گاهی بیچاره میکنه آدما مثلا احترام بی حد و حصر نابجا به بعضی ها میذاره چاپلوسیهای نا بسیار خطرناک نسبت به بعضیا داره. رفتار عجیب حریانه ای داره. چرا؟ به گمان اینکه یه روزی فلان خواسته ای که من دارم این فرد برای من ایجاد کند چون اون خواسته رو دوست داره و خیال می‌کنه این فرد می‌تونه این خواسته رو برای او ایجاد کنه، برای اون خواسته همین حرف این کارا رو انجام میده این کارا از چی برمیخیزه؟ از ریشه محبت نسبت به یک امر خیالی به یک امر وحمی حالا اگر این محبت نسبت به یک امر واقعی شد چجوری میشه؟ انایت بفرمید محبت کسبی اغلب در انسان بوده و سبب آن سه چیز است اول لذت اعم از جسمانی و غیر جسمانی وحمی یا حقیقی دوم منفعت ام از حقیقی و مجازی گاهی انسان بر مبنای لذت کاری رو انجام میده ولو خیلی فعلا منفعت در هم نداشته باشه گاهی منفعت ولو لذت نداره الان به خاطر اینکه او به نفت برسه حتی بعضی لذت ها رو زیر پا میگذاره مثلا اگه الان بخواد بره توی کوچه بازی کنه براش لذت داره اما به خاطر منفعت علم میره سراغ درس خوندن الان اگر به بره مثلا با یه ادهی تو گشت و گذاره توی پارکو نمیدونم یه باقی یه جایی براش لذت بخشه. ولی به جهت یه منفعتی نکنه از او باز بمونه این لذت رو راها میکنه سراغ اون منفعت میره. پس اینجا دلبستگی نسبت به این منفعت. منفعت گاهی حقیقیست گاهی مجازی. اما مهم این سوامه. سوم مشاکله جوهر. یعنی چی؟ و آن یا آم است چنان که میان دو کس که هم خلق هم طبع باشند به اخلاق و شمایل و افعال یکدیگر مبتهج شون یه انسانی برخورد میکنه به یه انسانی میبینه اخلاقش عالیه خصوصیات روحی خیلی ارزنده ای داره یه ارزش هایی رو در این عالم داره تحقق میبخشه و چون در خودشم این زمینه ها وجود داره خوشش میاد از او لذا میگه دوستش دارم منفعت مطرح نیست لذت جسمی و غریزی هم اینجا مطرح نیست به خاطر ارزش اون ویژگی که سعی کرده در خودش ایجاد بشه در هم ایجاد شده لذا اون رو طالبه این که یه مقدار ارزشش بالاتر میره ببریم جلوتر در انسانشناسی اسلامی بر مبنای نفس و اختزای دل خاج نصیر چی تفسیر میکنه و یا خاص اولی عام بود آم چی بود شما هر فردی رو ببینید که یه ویژگی اخلاقی خوبی داره یا ایساری داره یا گذشتی داره یا ارزشایی داره شما بر مبنای اون ویژگی دل دوستش میدارید اما یا خاص خاصش چیه؟ ویژه اهل حق است مانند محبت طالب کمال به کمال مطلق چه بس باشد که محبت مرکب از اینها باشد اینو داشته باشید؟ خیلی بحث عمیق و قشنگی رو خاج نسیر مطرح کرده شما از وابسته شدن طالب گشتن به یه چیزی دل میبندم علاقه بهش پیدا میکنم دلم میخواد داشته باشه از پایه های پایین بگیرید بیاد پایین هرچه دل شهودش کشفش مکاشفش تو مرحله فردی خودش و ارتباطش با عقلش تو مرحله عقل نظری و عملی کلان ارز میکنم پایین تر باشه دلوستگیهاش پایین تر میشه دیگه لذا برای خیلی از افراد حب, حب لذتیست دلبستگی دل لذتی است. برای خیلی از افراد حب دلبستگی دلبستگی منفعتی است ولی برای کسانی که کمال مطلق را میفهمند به اقتضای فهمی که نسبت به کمال مطلق دارند طالب کمال مطلق میشن حالا اگر این فهم از حد فهم عقلی فراتر بره به شهود قلبی برسه دل از یک طرف میگه میبینم مشاهده میکنم در خود می بم کمال مطلق را و اگر دل دل باشد بر مبنای یافتن کمال مطلق هر چیز دیگری بخواد وارد این خانه دل بشه میگه بر جای شما نیست شما مال مراحل پایین تری من الان بالاتر رو دیدم و میخوام شما رو بیرون کنم تا او وارد بشه به خصوص اگر این ویژگی وجود داشته باشه که اون بالاتر تا پایین تری خارج نشه وارد نمیشه همونی که امام صادق علیه السلام فرمودن القلبو اینجا معنی فعاد دله القلبو حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله قلب حرم امن است غیر خدا رو توش راه نده تو پرانتزی تذکر بدم رد بشم صادقانه قاطعانه بدون هیچگونه ملاحظه و مماشات ترجمه می کنم. به هر نسبتی که هر کاری می کنی ولی اون روزه میگیری غیر خدا تو دلته به همون نسبت خدا تو روزت نیست هر کاری در این عالم انجام میدی کتاب می حج می ری، کار خیر انجام میدی درون چی توشه درون برمیگرده به عقل و دل عقل چگونه فکر می کند؟ دل چگونه شهود میکنه دل باید با اونجا برسه که بگه غیر از خدا همه هیچ اینا بودن شهدای کربلا و تجلی خدا در آشورا تجلی خدا نه خدا اشتباه نکنید تجلی خدا در آشورا یعنی ابی عبدالله الحسین علیه السلام یعنی خواست خدا خواست امام حسین، عظمت خدا تو عظمت امام حسین، هدف خدا توی کربلا به معنی قایات الهی، اونجا بین امام حسین چی میخواد؟ و اصحاب کربلا چی بودن؟ خیلی هم شهید میشن. ممکنه این انگیزه درونی مقوله به تشکیکه ست تا خدا باشه یکی غیر خدا، نبدون تا خدا باشه دوتا غیر خدا، هیچ چی غیر از خدا اونجا را پیدا نمیکنه این اجازه میدید از عقل شروع کنم بیام جلوی یه مقداری ساده تر بشه ببینید عقل یکی از های بزرگ خداییشه که به من و شما داده شده هیچ منافاتی هم با عشق نداره و این غلطه که بعضی‌ها میگن آ کار ما عاشقانه است عقلانه نیست یعنی چی اگه کار عقلانه نباشه که مقدمه عشق نمیتونه باشه ما عقل دو جنبه داره یک جنبه نظری داره که میاد شناخت پیدا میکنه رضا مسئولیتش هم راجبه هست و نیست چی هست چی نیست چی حق چی حق نیست اینه میگن عقل نظری عقل عملی کارش در رابطه با باید و نبایده چی باید چی نباید الان مثلا فرض کنید اگر ما میایم از نظر عقلی نسبت به این حسینیه و این جلسه داریم بررسی میکنیم میگیم حسینیه است جلسه امام حسین است اینو شناختم خب طبق این شناخت اگر حسینیه است پس چه باید کرد؟ خب تو حسینیه باید یه کاری کرد که اختضای حسینیه باشه پس باید این کارو کرد بعضی اومدن خواستن بگن که ما در دین فقط تو جنبه عقل عملیش کسا شدنی نیست چون عقل عملی تا عقل نظری اول مقدمش رو فراهم نکنه نوبت به عقل عملی نمیرسه من یه فرمایشی راز امیرالمومنین تو نهج البلاغه دو جای نهج البلاغه در این رابطه اشاره کنم یک در بخش حکمت امیرالمومنین راجب کسانی که به مقام اولیا الهی رسیدن الا ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باتن دنیا اذا نظر الناس الى ظاهرا و اشتغلوا بعاجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها اولیای الهی کسانی یعنی ان که نظروا عقل نظریشون نگارهشون نظرشون این اندیشهشون شون الا باطن دنیا حقایق ما برای دنیا هم دارم می هست خدام هست مافوق ماددم هست حقایق معنوی هم هست اینا اینو نظر دادن خب ازا بختی که اکثر مردم نظر نظرو الى ظاهرها همین ظواهر رو دیدم بقیه رو نشناختن اما بعدش چی میگه وشتغلو این اشتغال چیه؟ عمل کاره یعنی عقل عملیشون بعد از عقل نظری که شناختن حقائق فقط ماده نیست. هستیمون حسره به این عالم محدود نیست ما یه عالم برتری داریم ول آخرت و خیرون و جا افتاده چی میگن؟ وشتغلو به آجله آجل با علف یعنی اون آینده دورتر که فعلا خیلی چشپورگون نیست وشتغلو به آجله ها ازا اشتغلن ناس به ها وقتی که بقیه مردم عاجل با این دلشون همین مرحله فعلی خوشه یعنی خوب دقت کنید ارتباط عقل عملی با عقل نظری در دو بعد امیرالمؤمنین چه زیبا معرفی میکنند یک مشغله انسان عمل انسان باید و نباید انسان که ترابوش عقل عملیشه بر مبنای نحوه شناخت عقل نظریشه شناختی که ماوراء ماده است حالا میاد عملش برای مابره ماده انجام میده. ولی اون کسی که مابره ماده رو نشناخته که حاضر نمیشه برای مابره ماده ایسار کنه. جورج پولیتسر فیلسوف محروف مارکسیستی مادیه. ماتریالیست محضه. خدا با معنویت هیچی رو هم قبول نداره. کتابی داره به نام اصول مقدماتی فلسفه. به فارسی هم ترجمه شده معروف. تمام ادعای مارکسیستا اینه که میگن واقعیت واقعیت حقیقت اونی که تحقق داره خیال نیست موهوم نیست رعال حقیقت ماده است غیر از ماده ایده است خیاله لذا به من و شمای مذهبی میگه شما ایدئالیستید و خودش میگه من رئالیستم من رئالیستم چرا؟ واقعیت واقعیت‌گرا چون واقعیت ماده است، غیرماده هیچ چیزی نیست. شما میگید خدا خدا که واقعیت نداره. پس شما معلوم خیالاتی هستید. مرحوم علامه طباطبایی پنج کتاب اصول فلسفه بر روش در جواب اینا نوشتن که رئالیست‌ترین رئالیستا ها ایم چون رئال واقعی فقط خداست. حقیقت محض فقط خداست. وقیه جلوه او حالا این آقا این کتابش که فقط غیر از ماده هیچی رو قبول نداره و میگه واقعیت فقط ماده است یه بابی باز کرده ایدئالیسم اخلاقی به همین جهتی الان بنده دارم ارز میکنم رابطه نظر و عمل گیر افتاده مجبور شد این حرف بزنه کجاست؟ میگه دانشجو سر کلاس از من پرسید استاد یک معتقد به معاد معتقد به عالم ما ماده اگر شهید بشه شهادت رو به پذیره توجیه عقلی داره یا نداره؟ بله چرا؟ میخواب شهادت فنا نیست، شهادت در راه خداست خدا هم عالم دیگه قرار داده حتی با دید منفعت هم نگاه کنه میگه چی؟ میگه جبران میشه پس توجیه داره حالا دید بالاتر از منفعت دیده عشق و محبته که کربلا اون مطرحه حالا عرض میکنم ولی حتی با دید منفعت نگاه کنی توجیه عقلی داره ولی یک مارکسیست که حاضر می شود در دفاع از آرمان خودش جان بازد چه توجیه فلسفی داره میگه من من هیچ برای اینکه او که میگه بعد از مرکی چی نیست تموم میشه ولی حاضر جانش بده خب با توجیه فلسفی داشته باشه میگه یعنی چی یعنی این عمل با اون نظر نمیخوره عمل باید با نظر بخوره لذا چون جواب نداره میگه ما اینجا ایدالیستیم ما اینجا بحث اخلاقیه تو اخلاق ما ایدالیست شدیم ما چی میگیم؟ میگیم نه عمل باید با نظر وفق بده نظر ما فوق ماده را رعال میداند حقیقت میداند و این برای اون حقیقت داره جانشو از دست میده لذا عقل نظری به شناخت میپردازه هست و نیست عقل عملی بعد از عقل نظری میاد بر مبنای اون شناخت عقل نظری باید و نباید درست میکنه حالا ارتباط اینا با هم دیگه اینن تو دل بین شهود و حب میشه جای دیگر خطبه 87 نحیر المؤمنین علیه السلام یه عبارتی دارن شبیه همون آیه شریفه لهم غلوبون لا یفقهون هونبه ها که فرمودن اولای که کل انعام میفرماین فسورت و سورت و انسانن ولقلب و قلب و حیوان قیافه آدمه همین دو چشم و دو گوش و دو دست و دو پا و حرکت میکنه سورت ولی قلب عقل و دل مثل حیوانه چون حیوان که تعقل نمیکنه حیوان که تحلیل ذهنی نمیکنه حیوان بر مبنای حیوانیت حرکت میکنه اون وقت این که قلب قلب انسان نیست حیوانه چی میفت چرا لا یعرف و بابل هدا فیتبه اوهو اول میگه معرفت باب الهدا این میشه چی؟ نظری بعدش چی میگه؟ تبعیت کردن میشه عملی. ولا با بل صد فیسد باب گمراهی و نابودی و انحراف رو نمیشناسه تا درش ببنده از اون طرف نره. فذالک میت الاحیا اینا یه ماردهان تو زندار را میرن یعنی ارزش انسان به چیه؟ قلب عقل دل با هم فعلا تو مرحله عقل عقل تو مرحله نظر قشنگ بفهمد تو مرحله عمل بر اساس اون فهم عمل کنه تو فرهنگ دینی ما میگن اعمال شما بر پایه نیت شما نیت شما بر اساس معرفت شما اینجا حکما اومدن رابطه بین عقل عملی و عقل نظری رو چار حالت ترسیم کردن و خیلی قشنگ گفتن انصافن خیلی قشنگ گفتن یک عده عقل نظریشون خیلی عالی کار میکنه ولی نوبت به عقل عملی میرسه میلنگن اینا مشکلشون شناخت نیست مشکلشون مرحله بعد بین عقل عملی و عقل نظریه مثال بزنم اینم خود حکما گفتن خوبم گفتن میگن به ظواهر ما فعلا نگاه کنید ما یه جنبه ادراکی شناختی معرفتی داریم یه جنبه تحریکی انفعالی و عملی الان اگر بنده که اینجا نشستم پرس کنید اتاق کارم مشغول نوشتنم چشم یک قدرت ادراکی شناختی که بناس بشناسه دستوپای جنبه انفعالی و عملی که قرار عمل کنه چشمم میبینه که یک مار قول پیکر داره میاد خب وقتی این شناخت حاصل شد، الالقایده با دست لپاش کار کنه به حرکت فرار کنه. حالا شما می‌بینید، من ما رو دیدم ولی حرکت نمی‌کنم. تعجب می‌کنید یا نه؟ میگید مگه ندیدید؟ میگم چرا؟ میگه پس چرا حرکت نمی‌کنه؟ میگم فلجم یکی بیاد دست منو بگیره برم. گاهی اقل نظری می‌فهمد، اقل عملی فلج شده. چطور؟ حالا انشالله عرض خواهم کرد. گاهی قضیه به عکسه. دست پا می دوه حرکت میکنه زبان همینجو میگرده ولی عقل نظری معرفت پیدا نکرده جو بر خودش میگه بی چی داری میگی میگه زبونت دیگه داره حرکت میکنه ها کجا داری میدویی ها پای دیگه باد را برم ها خب بفهم کجا باید بری اینا اوجش در دنیای دین خوارج زمان امیرالمومنین نماز رو میخونه، روزه رو میگیره، هی شب داری میکنه، پیشانی ها پینه بسته پسبسه، ذکرشون فضا رو پر کرده، ولی با چه شناختی، با چه معرفتی؟ ببینید دیگه وقت هست، مثالو برگردم. بنده چشمم داره تو ظاهر حالا میرم تو باتن، ظاهر چشمم میبینه مار داره میاد، ولی دست و پا فلج نمیتونم فرار کنه. دست و پا فعال برای فرار ولی چشم بینایی درست نداره که از چی باید بگریزم اگر میگریزی زبیگانه بگریز چرا زین یار آشنا میگریزی دوستی های بعضی انسان ها خوب دقت کنید امروز با احساسات دوست فردا با احساسات دشمنه امروز با عواطف دوست فردا با عواطف دشمنه امروز با احساسات شما رو میبره به عرش فردا با احساسات شما رو میزنه به فرش اینا بیچاره کننده بشریته چرا؟ چون معرفت نبود ولی اگه معرفت باشه چی میشه اومد خدمت امام صادق علیه السلام آقا یه درخت تو با حیات شما درخت انار یک آب یک خاک یک فضا اگر شما بگید یه انار داده نصفش حرامه نصفش حلال من یک ذره شکلی میکنم چرا؟ چون تو مرحله نظر فهمیدن شما امامی شما حجت خدایی شما ولی اللهی ولیاللهی خب الله که بی خود نمیزنه این شناخت رو داره لذا وقتی میرسه به حضرت حضرت میفرماد تنور روشن برو تو چشم آقا اما اون یکی از خراسان پا شده خیلی هم مدعیه این همه را رو کوبیدم از خراسان رفتم مدینه آقا ارادت دارم آقا چنینم عوشق شما ایم تو دل ما شما جا داری نود برو تو تنی آقا من نیمدم من بسوزونی به سوزونی که دیدید عشق دروغ بود؟ ایشش باید با عقل بسازه عقل باید تو مرحله عقل نظری معرفت درست پیدا کرده باشید و چه میشه که عقل معرفت نظری پیدا نمیکنه حالا عرض میکنم ان به اندازه که وقت اجازه بده یه بحث ریشه راجع به اعمال ما باطوش کار کنیم ما خیال کردیم حالا مایوس نمیکنم خوبه ولی حالا بنده مثلا 4 چارکت نماز میکنم یه 4 تا کار خیری انجام دادم 4 تا برای ابی عبدالله کردم منو بهش بغل دست سلمان فارسی مینشونن چرا امام حسین میفرماد شهدای بعد از کربلا به مقام شهدای کربلا نمی رسن؟ شهیده؟ شهید دیگه شهید که مقامش کم نیست که آقا ولی چرا به شهدای کربلا نمی رسه؟ حضرت فرمودند شهید عاشق خب شهید عاشق یعنی شه. این دو حالت رو عرض کردم یک عقل نظری خوب میفهمه ولی عقل عملی گیره اینجا میشه چه دزدی با چراغاید وزیده تر کالا که خیلی گرفتاری داره مثالشو ارز کردم دوم اقل نظری کار نکرده ولی نیروی تحرک شدیده اینم بیچارگی داره شاید اون فرمایش مولاتون تو نحج البلاغه که دو دست پشتم رو شکستن از سمزهری اصنان آلمون متحدک و جاهلون متنسک اشاره به این دوتا باشه سوم نه عقل نظری چیزی میفهمه نه عقل عملی حال کار داره مثلا آدمایی که تو کمان طرف اینجا افتاده الان تو کماس ما رو اجدهام داره میاد شما انتقاد میکنی مگه نمیبینی خب نمیتونه ببینه کماس بیچاره انتقاد میکنی چرا حرکت نمیکنه خب او کلان اراده حرکت نداره بعضی انسانها عقلشون به خواب رفته کمای ی عقلی دارن امیرالمومنین تو احج بالجلاغه فرمودن نعوذ الله من سبات العقل با سین پناه میبرن به اونایی که عقلشون به خواب رفته. تو مرحله نظر تا هم بیای بحث عقلی بکنی دهندره ده میکنه خمیازه میکشه یه قصه بگو ما کیف کنیم. یه چار به چهر حال کنیم. یه صدای قشنگ برای ما آواز بکنه حال بکنیم. اینا همون سرگرمی وجود نهایتش احساسات رو تحریک میکنه. احساسات هم نتیجهش چیه؟ یه شب عرض کردم چاشنی غذاست. غذا نیست. غذا باید وارد جان بشه چاشنی همون هاشی است که میره کنار وقت میشه آفتاب لگن ده دست و شام نهار هیچی خب پس دسته, سو... دسته چارم که عقل نظری زیبا تأقل میکنه مسائل و بررسی میکنه عقل عملیم تو مرحله عمل عالی در خدمت عقل نظری دست به دست هم میدن میرن که اینا میشن راستار. چه میشود که عقل نظری نمیتونه خوب عمل کنه؟ تعصب، پیشدابری، اطلاعات لازم رو نداشتن، به حدس و زنیات متکی شدن. من اینجوری میگم شما چرا اینجوری میگی؟ ما اینجوری بودیم، اینا اینا نمیذاره. لذا تا یک انسان منو کنار نذاره، خودشو نکوبه، تعلقاتو دور نریزه، در مقابل حق تسلیم محض نباشه نمیتونه، عقلش خوب کار کنه. چرا قرآن کریم میفرماید که وقتی که به بت پرستا اینجا رابطه عقل نظری عقل عملی بت پرستا عملشون چی بود پرستش بت قرآن کریم میگه آخرمه که اینو میشه پرستید یعنی چی یعنی نظر شما انقدر نمیفهمه که این ساخته دست خودتونه پس این عمل که با نظر نمیخوره چی جواب میدادن انا وجدنا ابانا الهذا آخه پدرای ما اینجوری بودن با پدراتون اشتباه کردن دلیل نمیشه که شما باید تفکر رو تا عقل سالم داشته باشید همینطوری که تو مرحله عقل نظری و عقل عملی عقل نظری باید از تعصب دور بشه از حدثیات دور بشه قرآن کریم ببینید چه زیبا اینجا این نکتر رو اشاره کرده ما در منطق میگیم وحم شک زن یقین وهم زیر پنجاه درصده شما نسبت بیه حقیقتی حتی 49 درصد احتمال میدید اینو میگن وهم 50 درصد 50 درصدو میگن شک از 50 بره بالا تا 99 میشه ظن چون بالاخره یه درصد احتمال خلاف میدید یقین 100 درصد قرآن میگه ان ظن لا یغنی من الحق شیئا زن نسبت به حق شما رو بینیاز نمی کنه و لذا وقتی اول قرآن کریم راجب متقین که قراره از قرآن مند بشن اولش چی میگه ایمان داشته باشه حقایق ما برای عالم ماده رو به و پنهانی های عالم ایمان بیاره و حقائق بعدی که قیامته چی میگه و بالاخرت هم یوقنون یقین پیدا کنه خب ما وقتی با زن و گمان و حدث و بعدم آبا نمیشه یه جوری بشه اینی که من میگم این بشه پس این میشه منیگرد تا زمانی که در این حدیم عقل نظری حق به فهم نیست حالا اگه تونستیم خودمونو خالی کنیم تعصبات همه رو دور بریزیم مرحوم علامه هلی مرد بزرگ علامه هلی به این عظمت فقیه بزرگ جهان شیعه است متکلم حکیم مرد است. شخصی اومد پرسید که آقا ما یه چاهی داریم گوستفندی رو زب کردیم این دست و پا زد افتاد توی چاه حالا آب چاه نجسی پاکه این گوستفند هم سرش تازه بریده بودیم خون و فلان اینا مرحوم علامه هلی خب فقیه شیعست پرمود بذاری بررسی کنم ظاهرا تا اون زمان شاید مبتلا به نبوده بررسی کردن و بالا پایین کردن و پرمودن نه آب چاه در جری المتصل به مخازن دیگه است و این اون اگر رنگ و بوش برگشته یه مقدار با دل بکشید به حالت طبیعی برگرده پاکه ولی بعد شک کرد خودم تو حیات منزلم یک چاه دارم نکنه ته دلم این تعلق به چاه خودم خب کندنم با امکانات اون زمان 800 سال قبل سخت باعث شده من این فتوا رو بدم من قرار نظر بدم فتوا بدم این نظر باید حساب شده باشه دستور داد چاشو پر کردن که این تعلق از بین بره بعد نشست مدارک رو بررسی کرد و همون نتیجه رسید گفت نه نتیجه همونه معروف میگن یا عالمی مسجدی پیشنماز بود خونش هم که بود میومد بره سرای قصابی بود از این قصاب گوشت می‌خرید هم این تپاله های گوشت رو قصاب میدادیشون گربه ای تو خونه داشت. می آورد برای گربه یه روز اومد رد بشه دید غصاب داره یه کار خلافی میکنه اومد خونه اول گربه رو بیرون کرد بعد اومد گوه آقا این کار خلافه گوه آقا گربه گوه اول رد کرده اول گربه رو رد کرده تا این گربه رو رد نکنی عقل نظر درست پیدا نمیکنه. حالا نظر پیدا کرد مرحله دوم امن انقدر شیطنت ها پیش میاد هوای نفس در درون قوغا میکنه ها درست میشه حالا درست فهمیدی ولی فعلا شرایط چنینه حالا زمان همچینه حالا فعلا اینجوریه اینا بقدری در درون تو قوغایی درست میکنه که نظر نظر به عمل تبدیل بشه کسی میتونه نظر رو به عمل تبدیل کنه که وقتی تو مرحله شناخت و کنار زد موانع رو کنار زد تو مرحله عقل عملی موانع رو کنار بزن این عملی بشه حالا که کناری شد عقل عملی میگه باید عقل عملی نزدیک میشه به دل حالا چطور؟ نزدیک میشم با حب که فردا شب و پس فردا شب بیشتر رو کلمه اون عنوان با این مقدمه توضیح داده بشه دقیق کنیم عقل نظری اگر تعصب را پیشداوری را منیتها را کنار بگذارد این قاعده ای را که مرحوم خاجه نسیر فرمود یه اقتضایی دارد دل من و شما که شما وقتی ببینید یه نفر کار خوبی میکنه خوشتون میاد یا نمیاد الان اگر ببینید یه ظالم فاسق فاجری یه بچه آقا یک تفلک هشت ساله نه ساله رفته بقالی کاسه ماس خریده بیاد بره خونه یه قلدری سر راش گرفته چار تا مشت میزنه کاسه ماس رو میگیره شما بدتون نمیاد این خصیصه ای ذاتی ما انسان هاست دیگه اگه بدمون نیاد چی شده معلومه دل مشکل پیدا کرده لذا همه قبول داریم بدمون میاد اما اگر بنده ببینم الان یک جوان قوی ورزشکاری که کاراتم میدونه و خیلی هم نمیدونم تو بدن سازی لنگه نداره و الان یه ظرف غذا گرفته داره میخوره یا بچه هشت ساله گریه میکنه برمیگرده چیه جون من گرست هم هیچی هم ندارم میگه من نمیخورم بگی تو بخور خوش تو نمیاد لذت نمیبرید این لذت چه لذتیه حتی اگه خودتون یه وقت این کار کردید با اینکه که رنجتون میده ولی لذت میبرید خب عقل میاد چی میگه میگه من یک دلی دارم که خوبی ها رو دوست داره خب اگه خوبی ها رو دوست داره پس باید این رابطه دوستی دل رو با خوبی ها کار کنم گره بزنم چی نمیذاره دلم خوبی رو دوست داشته باشه خوبی قلابی جای خوبیه حقیقی بنشینه اگر خوبی قلابی جای خوبی حقیقی نشست اینو بهش میگن عشق مجازی میگه پس تو معلومه که متوجه حقیقت نشدی بیا اونو از خودت بیرون کن تا بتونی دلو جای حقیقی بدی توی قزلیات شمس یه دو بیت زیبایی در این رابطه وجود داره که حیفه نخونم قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین میدهد قاضی باقی این رزه جنگجو اهل قذبه کسی که داره می قاضی جنگجو به دست پور خود به بچهش شمشیر چوبین میدهد میگه الان شمشیر فلزی بشبدم خطرناکه ولی بذیر شمشیر چوبی پلاستیکی بدم برای اینکه تمرین کنه یاد بگیره الان مرحله تمرینه قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین میدهد. تا او در آن استاد شود شمشیر گیرد در غذا. برای این شمشیر چوبین و پلاستیکی رو داده تمرین کنه استاد بشه. فردا تو میدان جهاد بتونه شمشیر واقعی رو بگیره. عشقی که در انسان بود شمشیر چوبین آن بود. آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا. عجب دباره تکرار میکنم. عشقی که در انسان بابد شمشیر چوبین آن بابد آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا یعنی آقا اگر الان این بچه یه شش ساله هفت ساله رو دارم تمرین میدم یه شمشیر چوبین به دستش دادم اشکالی نداره ولی اگر الان یه جوونه 18, 19, 20 ساله شده الان میخواد بیاد با من میدون جنگ با دشمنان به جنگه با شمشیر چوبین بیاد همه نمیخندن؟ میگه این های این عشق‌هایی که ما روزمره به پول و ثروت و مقام و عنوان و شهرت و این حرفها داریم اینا مثل شمشیر چوبینه خوب کی قرار این شمشیر چوبین از دست بیفته شمشیر واقعی بیاد اونگاهی که دل به رحمان متصل شود اگر به حدی رسیدم که هنوزم به جای این که دل به رحمان بدم دل به غیر رحمان دادم من 18 ساله‌ایم که با شمشیر چوبین دارم می‌جنگم عشق یعنی این. نه یعنی آقا من کیف میکنم تو جلسه اینجوری باشه اصلا دین اومده که کیف شخصی را فدای خواست خدا بکنیم چی که او میخواد. لذا اگه از نظر ظاهری بخوایم ما نگاه کنیم حضرت زینب سلام الله علیه منیت بخواد نعوذ بالله خودخواهی بخواد مطرح بشه خب حضرت زینب سلام الله علیه وقتی تو کاخ ابن زیاد قرار میگیره اون ظالم فاسق فاجر همه کاره میخواد شما شماطت کنه ما سنه الله به خدا با شما چی کرده یه دفعه صدای علی علیگونه زینب فضا رو پر کرد ابن مرجانه ای خانواده ای که معلوم حالید و شما رو به مادرتون صدا میکنن چون معلومه چه خانواده ای هستید والله ما را ایت الا جمیلا جمیل یعنی چیز خوب زیبا جمیل چیزی است که آدم دوستش داره میخواد چرا ما ازت زینب دوست داشت؟ روی عشق مجازی یا عشق حقیقی عشق حقیقی چیه چی دوست داری اون که او دوست داره او چی دوست داشت ان الله شاهنگرا که قتیلا او دوست داشت که الان برای نجات و شریعت حسین جان تو کشته بشی نه حسین خم به ابرو میاره نه جوان 13 ساله‌اش هم وقتی شب عاشورا بهش میفرماد که عمو جان مرگ در نظر شما چطوره اهلامن العسل شیرینتر از اثر حرف بود یا تو عمل نشون دادن و لذا زینب سلام الله علیه هم و والله ما رأیت الا جمیلا یعنی چی؟ یعنی دل مثل عقل عقل تو مرحله عقل نظری اون را که بنابود بیابد به سوش بدوه یافته میدهه. اونی را که یافته قرار از او فرار کنه فرار میکنه. دل اون یافته عقلی رو به مرحله شهود قلبی رسونده. وقتی به مرحله شهود قلبی رسونده، دویدن یا فرار کردن قویتر شده این انشاءالله فردا شب با یه روایتی از امام صادق براتون توضیح میدم اینان فرمایش امام صادق علیه السلامه ولی مثال بزنم بحثم اسم شب رو جمع کنم ببینید من درست کردم الان توی این اتاق نشستم چشم میگم بعد برید عقل بد برید دل چشم میبینم ماره چشم من بیناست خوب دقتم میکنم بله بله واقعا ماره خیلی هم خطرناکه خب علالقائده دست و پای من جهاز تحریکی من تحریک میشه بدو عقل یقین میکنه ببینید مثلا نسبت به دروغ عقل یقین میکنه دروغ بیچاره میکنه آدمو ریا بیچاره میکنه آدمو منیت بیچاره میکنه آدمو تخلف از حریم الهی انسانو بدبخت میکنه اینو عقل میفهمه تو مرحله نظر مثل اینه که چشم دید ماره میگه خب فرار کن دیگه تو مرحله عقل عمل اگه دستفا فلج نباشه باید فرار کنه فرار میکنه خب عقل میفهمه اما دل چی؟ دل شهود میکنه میگه آبه. همراهی عشق با عقل چیه؟ میگه اگر شما الان به چیزی دل دادی عشقی دلدادگی دیگه ارز کردم دلوستگی خب به درونی اوج حب رو میگن عشق تعبیر قرانیش اشد حب الله شدیدترین حب برای خدا باشه میگه الان دلم به یه چیزی دلداده شده عقل باید بیاد ببینه این نکنم شمشیر چوبین هنوز تو دست ننداختی بنداز دیگه آقا بنده هفت سالم بود یه ماشین بامباتری برای من خریدن بازی کنم سرگرم بشم الان 50 سال 60 سالمه میگم اون ماشینمو بدید میگه بس دیگه بنداز دیگه آقا نمیفهمی دیگه عشق اگر دید دل به غیر خدا داده عقل میگه برو آقا جون عشق نیست دروغ میگی و عشق آشقان ابی عبدالله کیانه ابی عبدالله میگه اگه زیر چکمه شمرم قرار بگیرم میگم خدا حالا ما سورساد دایر باشه امام حسین و خدا بله سورساد دایر نباشه هزار جور گله و نمیدونم چی حرف این کجاش عشقه دروغه اشق راستین یعنی دلدادگی بر مبنای شهود قلبی بعد از مرحله ورود عقل عملی بعد از عقل نظری که انشاءالله اینو فردا شب با یک روایت از امام صادق و یک روایت از امام باقر علیه السلام توضیح بیشتری بدم خلاصه بحث امشبم چی شد؟ بعد از این سه شب به اینجا رسیدیم امیر علیه السلام وقتی به سرزمین کربلا رسیدن فرمودن اینجا مناخ و رکابن و مسار و عشاق شهدا اینجا جایگاه فرود آمدن بزرگانی و جانبازی شهیدانی که عاشقن چه درجه ای خب اینا عملشون چی بود شهادت بر مبنای این عملی که دارن نه قبلی ها به اینها رسید رسیدن نه بعدیا میرسن خب حالا ما به عنوان پیروان مکتب امیرالمومنین میخوایم بفهمیم ما به اندازه ای که قرار پیروی کنیم عملمونو چگونه کنیم که لعاقل دوبال رو اونا باشیم به اندازه ای که ما میتونیم. سلمان به اندازه ای که دنبال پیغمبر رف شد من احلال بید. ما به اندازه ای که حسین حسین میکنیم سلام الله علیه دنبال راه حسین بریم. میگه اونا همه چیزشون رو برای خدا دادن ولی عاشقانه دادن. آشغانه خلاف عاقلانه نیست. عقلانه خلاف یک برنامه احساس حسی نیست ولی بالاتره بالاتره یعنی چی یعنی شما وقتی عقل و دخالت بدی نمیتونی رد کنی من تو عقل میگه تا اینجا من اومدم وقت عاشقانه چه میشه میگه اون حقیقتی را که قرار دل به با او وابسته بشه تو با عقل نظری فهمیدی با عقل عملی به اندازه که تونستی عامل شدی من با دل شهود کردم حالا که شهود کردم دلمم به او دادم حالا که دل به او دادم چیز دیگر تو این دل دیگه راه نمیدم اون وقت به این جهته که خدا در قرآن کریم خوب عنایت کنید خدا در قرآن کریم راجع به مؤمن که آیش رو بحث کردیم با هم میپرماد اشد و حبن للا لاملام لام اختصاصه شدیدترین حبش باید برای خدا باشه اما چرا به پیغمبر میگه قول از اسالکو ملیه اجراً اللل مبدت افل مبدت اوج محبته شدیدتر از خود محبته به معنی این که انسان زمنی که دوست داره دوستانش دوست بداره دشمنانش هم دشمن بداره خب چرا اینو گفته؟ چون میگه شما اگر او بدی؟ یه مظاهری بذاشتم این مظاهر رو ببینی به وسیله اینا بیایی جلو همونطوری که سوره آیه 35 ماعده فرمود یا ایوهالزین آمنو اتقو لاوبتقو الیهل وسیله با یه مثال ارز میکنم یه استاد کامل زحمت کشیده ای که شما قبول دارید در رشته ای که قرار پای درسه او بشینید او میتونه شما رو به هر جایی که تو اون رشته بخواید برسونه با استاد میگی میگه فلانی رو ببین چجوری حرکت کرد دنبالش را بیافت. رهچنان رو که رحروان رفتن. خدا میگه دل بدید و اهل بیت تا از طریق دل دادن به اونها بفهمید دل دادن به ما است لذا قمر بنی هاشم در بین شهدهای کربلا یه حساب دیگه ای داره. من نمیفهمم طبق فرموده معصوم میگم. وقتی که امام سجاد میفرماید اموی من امام صادق میفرماید عموی من مقامی در فردای قیامت داره که همه شهدا او غبته میخورن و می نمیفهمم یعنی چی اما این مقدار میفهمم چرا چون چنان دل به امامش داده که جز اطاعت امام هیچی براش مطرح نیست لذا عبدالصالح شدنش هم یعنی همین السلام علیکه ایوها العبدالصالح المطیع الله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین ولی الحسنه حسین مطیع اونایی که قراره تو رو به خدا برسونن ولذا در عمرش به امام حسین میگه یا سیدی و مولایه اما یه جا برادر گفت که میدونید یکی از اونایی که دل داده با اونی که دلش مظهر الهیه زینب سلام الله علیه هاست. زینب رابطهش با امام حسین رابطه فقط برادر نیست زینب عقیله بنی هاشمه زینب سلام الله علیه کسی کسیست که امام سجاد امام زمانش فرمود تو عالمه غیر معلمه تو محدثه ای یعنی تو علم لدون ای الهی داری علم من اندالله در چه مقامیه زینب سلام الله علیه نسبت به ابو عبدالله الحسین علیه السلام تمام وجودشو حسین گرفته خاسکاری اومده برای زینب امیر المؤمنین فرمودن دخترم عبدالله برادر زاده منه خاسکاری اومده جوان بدی نیست نظرت چیه بابا جون من در مقابل نظر شما نظر ندارم ولی شرط دارم شرط هم چیه من باید لاقل هر سه روزیه بار حسین رو ببینم. من جدای حسین رو نمیتونم تحمل کنم. و اگر هر سفری حسین رفت من با هم باشم. عبدالله قبول کرد. حالا سفر کربلا پیش اومده. کاروان داره به طرف کربلا میره. بین را طوفانی شد. یک و غبار شدیدی برخواست. لحظاتی بین حسین و زینب این گرد و غبار و فاصله انداخت. بعد از اینکه که گرد و نشست دیدم زینب خیلی مضطربه چی شد بی بی جان؟ چی شد؟ حالا این زینب با این دلدادگی به ابی عبدالله الحسین علیه السلام. عصر آشوراس. ابی عبدالله اومده پشت خیام. یا زینب، یا رباب یا کلسوم، یا سکینه. علیکن من السلام. زینب اول بر مبنای رابطه دل با ابی عبدالله که محبوبش حسین حسینم مظهر خداست اومد شروع کرد داد و فریاد کردن به حدی که قش کرد تو خیمه افتاد زمین امام حسین زینب رو به هوش آورد بعد یک دستی رو دل زینب گذاشت بر مبنای یعنی درست دل به من دادی ولی قرار من کانال الهی باشم پس باید تسلیم امر خدایی باشید. یه دفعه زینب برگشت گفت حسین جان برو. بچه ها با من برو. همه جا هم با کمال استقامت حالا عصر آشورا حسین رفت. زینب هم دیگه حسین رو ندیده. اون رابطه آشغانم بینشون به معنی درست کلمه موجوده. حالا عصر یازده مثل دیروزم اومد تو گودال قطنگاه بدن بی شدید که دیشب عرض کرده. بعدم با این زن و بچه را افتاد. حالا امرو اصل وارد بازار کوفه شدن. دوباره حسین شد دید. اما چگونه دید؟ وقتی وارد بازار کوفه شد زینب، این کوفه ای که باباش علی خلیفه بود. این کوفه ای که زینب استاد تفسیر قرآن زنان کوفه بود. این کوفه ای که مردم می اومدن از زینب درس دین یاد بگیرن، اما حالا دارن نان و خرما به عنوان صدقه به این بچه ها میدن. از پشت باما دارن سنگ میزنن، و برخی هلهله میکنن برخی ولوله میکنن برخی میگن یه عده خارجیها رو آوردن یه دفعه صدای گونه زینب پیچید خطبه کزایی بازار کوفه چنان خطبه مردم رو میخکوب کرد پشت باما که سنگ میزدن دستا همین جور موند جمعیت که از پایین توهین میکردند دهنهاشون باز موند به ابن زیاد گفتن ابن زیاد زینب داره غوغایی در بازار رو کوفه برپا میکنه چه کنیم ساکتش که اینو فهمیده بودن هیچی نمیتونه زینب رو ساکت کنه مگر سر بریده ی عبدالله رو در مقابلش قرار بدید یه وقت دختر خورسال عبی عبدالله تو کجابه تو بغل زینب نشسته بود دید لحن صحبت امه عوض شد امه جان با کی داری سخن میگی الله علیکه یا مولا یا باب دل الله و لذر وایل نتیالت به بنای علیکم سلام الله ابدا ما بقیت و الليل اللیل و بالنحان. ولا جرح الله اخر احد مني لزيارتكم السلام على الحسين اللهم بسمك يا لظيم الاظم الازل الجلل الاكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله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 وَكْفِنَا يَا غَازِيَ الْحَاجَةِ وَيَا كَافِيَ الْمُحِمَّةِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْنَ وَدِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحَمِينِ يَا مَنَ ازْحَرَ الْجَمِينُ وَيَا مَنْ سَتَرَ الْغَمِينُ يا من لم يغفز بالجريرا يا من لم يأتك يا عظيم الله يا سنه تجاوب يا واسع المغفر يا واسع اليدين بالاتيه يا صاحب الموائب السنيه يا الله نجاتا من يا یا الكريم نجنا وخلصنا خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیبون مزدر ازادا و یک جبسون ام يجيب جیب مزد در ازاد یا گیج بسوم یا و بِكَ اِنَّ آوَا مَصْدَقِ زُونَ الهی یا و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسن و تسعت المعصوم من ذریت الحسن اللهم عجل لوليك الفرا وجهنا من الانصاري واوان اللهم انصر من نصر الدين وخز من خزل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم مشغل الظالمين بظالمي وجعلنا بین حما سالمین غانمین خدا اون چه در این ایام به بندگان صالحت مرحمت کردی به ما هم مرحمت بفرما جوانهای ما نوامیس ما مملکت ما مقدسات ما شیعیان دنیا در کنف امایتت محافظت بفرما آل سعود و آل خلیفه و حامیانشون و دا شکن بفرمان اموات زبی حقوق من ببخش و بیامار ما را آق والدین و آق اساتید ممیران سبابی از این مجلس به روح مرموم آجوای من زاده و آج خانومشون آعد و واصل بگردان به نبی و آل.